زیارت عربعین از عناصر مهوری دین ماست که علائم مؤمن پنج جاست شمینه یه وقت از انسان زیارت می کند سواب می برد یه بزرگواری جابر و از دورترین نقطه اون روز با و از خودشون رو کربلا رسندن توبا لهم به حسن کار بسیار خوبی کردن، سنتی گذاشتن ادهی راه افتادن، پیاده و سواره این زیارت داره، این ملحبه است. یه وقت است نه، یک دستوری است با دو تا زیارت، با دو بیان از وجود باره امام سالده رسیده است به نام زیارت عربعی. این زیارت ها چند قسم است؟ بعضی ها فقط عرض سلام و اظهار ارادت و اظهار خضوع در پیشگاه این زباعت قدسی است بعضی از اینها پرمحتواست و پربار است بعضی از زیارت نامها مثل سوری از صور قرآن است شرح محققانه میخواد شرح آلمانه میخواد نماید گفت زیارت عربین را شرح کردن خیر، خیلی از مطالبش هنوز مونده خیلی از تحلیلاتش مونده ما هر روز گرفتار کسانی هستیم که 40 را و امثال را به بار در زیارت اربعین بعد از عرض ولایت و ادب احترام پیشگاه سالار شهیدان و شهدای دیگر علیهم و السلام علیه تحلیل کرده است ذات اقدس اله انبیاء عموماً وجود مبارک شون علیهم آلاف و تحت و سلاف را برای دوتا کار فرستاده این دوتا کار در نهج البلاغه علی ابن علیوی طالب به صورت مشخص بیان شده همون دوتا کار در زیارت عربین به صورت شفاف بیان شده یکی حل مشکل علمی یکی حل مشکل عملی مشکلات جامعه ما یا در اثر ندانستن است که به دنبال هر هوس و هوایی حرکت می‌کند یا به دنبال انگیزه نداشتن است یا لفقد اندیشه است یا لفقد انگیزه در قرآن کریم فرمود انبیا آمدند تا هم جهل علمی را برطرف کنند جامعه را عالم کنند یک هم جهالت و نجهل جهالت عملی را برطرف کنند جامعه را عاقل کنند این دو این که مرحوم کلینی اولین کتابی که ذهب کرده کتاب العقل جهل است بعد کتاب العلم علم مقابل ندارد این عقل است که مخالف دارد، مقابل دارد آدم یا اهل بهشت است یا اهل جهنم این جهنم یا درس خوندن یا درس نخونده این بهشتی هم یا درس خوندن یا درس دخونده اونی که مهمه عقله عقل همون که بهی او به در رحمان و کتوسی به بهل جنان این عقل است که مقابل دارد وگرنه علم با جهل جن میشه بیان نورانی هست تعمیر هست. رب آول من قد قطنه جهله و علمه و معه و لا ینفا ازا علمت فعمل لا تجعل یقینک شکا این دو فاموت خیلی از درس خونده های حوزه و دانشگاه ان که کشته جهلند پس در این علم با جهل جمع میشه اگر کلینی بابل علم و جهل برای اینکه علم مقابل ندارد علم یعنی دانستن انسان گاهی میداند و جهنمی گاهی نمیداند و جهنمی است تلاش انبیاء عموما تلاش ذات مقدس خاتم علیهم آلاف و تهید و سلا هم یعلم همون کتاب و حکمه از یک سو هم و این کان و فیز قبل من قبل و فی زلال مبین از توی دیگر هم زلالت را برطرف کند که انسان از سرگردانی به در بیاد هم نفهمی جامعه را برطرف کند جامعه را بفهم بکند عالم کند کنه. این بیان قرآن ترابانه در اولین خطبه از خطبه های نورانی نهج البلاغه وقتی به نبوت خاصه میرسد بعد از نبوت آمه فرمود پیامبر آمده در جهان ادعی مشبه بودن ادعی ملهد بودن ادعی منکر بودن کذا و کذا و اهلل یک و اهل دو یوم عز دارای احبای متشدد و منتشر بودند و حضرت آمده با اهل ااولم سخن گفت نه تنها با اجازی ها الله بهی من الظرالته و انقدر هم به مکاولی من الجره. فرمود ذات اقدس به وسیله پیامبر این این دوتون نور را به بشریت داد چند جمله قبل دارد و اهل الارض و اهل اقلمه و اهل اره و معز متشتون منتشرتون نه مردم جااز. فرمود ذات اقدس علاب و وسیله پیامبر این دو تا فضیلت را به جامعه بشریت داد اونها را از زلالت نجات داد اونها را از جهالت نجات داد از نفهمی به سرگردانی همین دو بیان نورانی شما در زیارت اربعین می‌بینید وجود مبارک امام صادق فبو حسین ابن علی اگر حسین من هو و هو من حسین برای این است که او نصیحت که سخنرانی کرد پیام داد اعظرف نصف فی دعا این را کرده سخنرانی کرده نامه نوشته مناظره کرده مصاحبه کرده و بلغ نصف و نصف و نصیحت و کرده تا اینجا و بلغ مهجتهو فی که نفی سبیل که اونا که همراه او هستن فی سبیل که هستن که خود او فی سفی است. و بزل مهجتهو فیکر لیستن قذع عبادکر من الجهالته و حیرت زلاله مردمو میخواد از جهالت برهانه و از نجات بده این خون برای همینه